کلال آباد محمد سالحالا زمستان است و شیون کلاخا یک سر برس میریزد مزاره نمونه زیر کشت سال ها یخ زده است می نویسم خوشید جان شاید این زمستان قسمت ما بوده اما این یکی را هم مچاله می دکتر ساری با شعف از تأخیر زایمان و پیشگیری از اندروتوکسیمی می گوید. من زیر سربرگ اداره دامپزشکی می نویسم جناب استاد: من مأموریت دارم دو مورد شاربون گزارش شده اجازه می دهید بروم با احترام سوزنچی چی. بچه ها دست به دست یادداشت را به دکتر ساری می رسانند او از زیر عینک دنبالم می گردد. همین که چشمش به من میافتد با ابروها به در کلاس اشاره میکن. جز ها و کتاب را توی چیف میریزم و از کلاس خارج می شدم کلاه بافتنی را رو روی سرم می کشم. تا ایستگاه قذبین راه درازی است پرنده پر نمی زند. راه هم را کج می کنم. از وسط جاده می کبوتری کبوتری یکی متر جلوتر روی برفا پیاده می روید. من هم پا جای پای او می گذارم. ماشین بوغ می زند و کبوتر پرواز می کند. سر می ولدزاده ولد زاده است. می خندند. را می تکانم و سوار می شوم همین که جابجا جا شدم سر روی شیشه مینیبوس میگذارم و تا اداره میخوابم خواب میبینم شنلی از برف به تن دارم میان اجتماعی از گاوها و گوساله ها خوشید خانم با یک دسته گل آفتاب گردم به طرفم میآید میگویم خوشید جان من آسمان نیستم شما مرا به باریدن واداشته اید ولدزاده میزند روی شانه‌ام میگوید رسیدیم. دلم میخواهد خلاصه خواب هایم را برایش تعریف کنم اداره مهالود و یخ زده است همه جا شبیه خوابی است که میدیدم پشیمان میشم و چیزی نمیگویم میپرسد مأموریت داری امروز همه راها بسته است یعقوبی هم دختر از زایده رفته مرخصی ولی موتورش اینجاست میگویم تا شاربون گزارش شده هر طوری هست باید بروم او میرود من هم از کمدم چکمه ماسک دستکش و عینک برمیدارم میبینم در انبار دارویی باز است. هرچه سوزن و پیستون و سرام و واکسن و ویتافورت و آر اس 77 پیدا میکنم توی کیسه میریزم. ولد داده هم موتور را با چراغ روشن و لب خندان میآورد، توی جک میگذارد. میگویم هیچ کس نیست. به کی رسید بدهم؟ میگوید اوزه شیر تو شیره بیا اون نرو. از سرما این طرف ها خبر نداری توی این برف جلالابات رو پیدا نمیکنی؟ من جای تو بودم تا شب تخمه میشکستم، شبم قشنگ جا میانداختم تو اتاق رئیس میگرفتم تخت میخوابیدم تو گرگا رو نمیشناسی میشناسی با خودم فکر میکنم این ولادزاده چقدر حرف میزند. حق با دکتر خانجانی است انسان بدون ریغ یا پر حرف میشود انگار فکرم را میخواند. چون با صدای بلند میخندد و میگوید حتما تو دلت تو دلت میگی ولدزاده خیلی حرف میزنه نه بالاخره هر حرف میاره باد برف میخواستم دستکشم را دربیاورم با او دست بدهم که دستم را میگیرد نمیگذارد من هم بغلش میکنم و وسایل را ترک موتور میبندم و راه میافتم موتور سواری رو دوست دارم عاشق خورشید گاوها و ها هستند با چه اصراری خودم را از اصلاح نباتات به دامپزشکی منتقل کردم رفتم دانشگاهی کشاورزی کرج فقط به خاطر گاوها و گوساله ها آنها هم مرا دوست دارند از نگاهشان میفهمم هر بار از کنارشان میگذرم ماغ میکشند من هم تلافی میکنم برای هر کدام از یک سوزن استفاده می کنم. آن هم سوزن استریل تازه هنگام تزریق با یک دست پوستشان را میکشم تا به بافت های عصبی آسیبی نرسد دارو از پوست و چربی بگذرد و وارد عضله شود اغلب کنارشان می نشینم درس میخوانم <تصفح> یا برای خورشید نامه می نویسم شاید یک روز کتابی بنویسم و در آن ثابت کنم به عکس تصور انسان ها گاو ها گاو نیستند گاوها شخصیت پیچیده‌ای دارند. برخی احساساتی، گوشگیر، خجالتی و فروتنند. برخی ریاست طلب، پرخاشگر و زودرنجند. اندام بزرگی دارند ولی بسیار مهربان، متین و بی‌آزارند. گاوها اغلب بیماری قلبی دارند. نه به خاطر جثه بزرگشان، به خاطر رنج‌هایی است که در طول زندگی میکشند. از نظر عاطفی هم پیچیده‌اند. ماده مادران خوبی هستند. نه ماه بار دارند و فرزندشان را تا یک سالگی شیر می دهند و مراقبت می کنند. مهارت های زندگی میآموزانند، هم به ما شیر میدهند هم به بچه هایشان. برای همین بیشتر گاو ها دچار کمبود کلسیوم هستند. سینه هایشان ملتهب و متورم است. حافظه خوبی دارند. باهوشند. هرگز برکه ای را که از آن آب نوشیدهاند یا علفزاری را که در آن علفهای ای چریدن و زیر آفتاب مطبوعی چرت زدن فراموش نمیکنند خوبی را به خاطر دارند برای از دست رفتن اعضای خانوادهٔ خود یا کسانی که با مهربانی و احترام با ایشان رفتار کردن عزاداری میکنند حتی اشک میریزند آنها یکسره نشخار میکنند و من کنارشان مینشینم و مینویسم خورشید جان امان از این بیتو ها.» وقتی از شما دورم و درونم آغاز می شود. کاش میدانستید درباره‌تان چه فکر می کنم. من برای دیدن شما همه درها را زدم. آشقه خوب است. زندگی حلال کسانی که آشقن. من خجالتیم و هنوز نمیدانم اسمتان را چگونه تلفظ کنم. ای کاش اشق خود لب و دهان و زبان داشت.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 آن طرف ها تا چشم کار میکرد لاله های سرخ رو بود حالا همه زیر برف مانده حتی آسمان را گم کردم صدای موتور عوض می شود ترمز می کنم را بر می دارم. از خدا می پرسم خدا جان راه من کدام طرف است؟ راه برگشتی نیست بی اختیار می لردم های گرگی را می شنم از آینه موتور خودم را می بینم با صدای بلند می گویم تو اینجا چه می کنی ولدزاده گفت نرو گفت در این فرق همه جا پر گرگ گرسنه نست لج نکردم نگران گاوها بودم گاوها را دوست دارم گوثاله ها را دوست دارم دامپزشکی پزشکی میخوانم که دردشان را تشخیص بدهم بیماری هایشان را بشناسم هر گافی که مبتلای جنون میشود و از فرط درد سرش را به دیوار تعویله میکوبد گریه میگیرد خیال میکنم یکی از عزیزان خودم مبتلای دژنراتیو شده است وقتی تذریق میکنم فکر میکنم به خواهر و برادر خودم سوزن میزنم بلدزاده گفت یوسف این زمستان عروسی است. باور نکردم گفت آنها این شرایط را دوست دارند هرچه برف و باد و بوران بیشتر بهتر خودشان پالتوی پوست گران قیمتی به تن دارند نه میلرزند نه میترسند رویایشان دریدن و خوردن است اهلی نمیشوند همین ولدزاده میگفت من خودم یک بار گرفتارشان شدم با احترام بسیار گفتم گور لطفا بفرمایید مرا بخورید باور نمیکنی کنید باز هم این وحشیها به من حمله کردند جروواجرم دادند آنها با اخلاق میانهای ای ندارند حتی به ماده خودشان چنگ و دندان نشان می دهند تازه ماده هاشان از نرهاشان بی رحم ترند نمیشوند عاشق نمی شون. بچه هاشان را نمی بوسند بوسیدن را اصلا بلد نیستند فوزه هاشان برای این کار طراحی نشده همدیگر را در آغوش نمیگیرند، گیرند هم نمی خورند حرف های ولدزاده را باور نمی کنن. از ترس دندان هایم به هم می و در چنین حالتی میگویم انسان بدون رویا کور حرف می شود جلال همین نزدیکی باشد ها بیهوده زوزه نمی کشند دوباره راه بیفتم اما زوزه گرگی را از فاصله نزدیکتر میشنم آشکاران می لردم. یخ زدم، حتی عقلم منجمد شده، نمیتوانم فکر کنم و راهی به نظرم نمیرسد. رسد. استاد ساری در سکسانان از آتش می بی کیفم رو باز می کنم، هایم را بیرون میکشم کشم. به نظرم جزده های درسی برای آتش زدن و رماندن گوکا کم است. پس کتابهای درسیم را به اضافه کتاب راهنمای گیاهی حسین گلگلاب کمی دورتر از موتورسیکلت زرددری روی هم میچینم حالا باید تکه کاغذی را به بنزین آغشته کنم دلم نمیآید ورقی از جذبهها و ها را پاره کنم اوضاع خندهداری است دست دجیب هم میکنم کاغذ تا شدهای را بیرون میکشم پیش از آنکه کاغذ را در باک بنزین موتور فرو کنم کنجکاو میشوم آن را باز میکنم و میخوانم نامه اداری است خودم نوشتم جناب آقای دکتر حاجتی، ریاست محترم اداره دامپزشکی ناحیه به این وسیله به عرض می‌رسانم شما هم رئیس ما هستید و هم استاد اما نمیدانم چرا برای هر متقاضی از راه رسیده ای پروانه راهندازی صادر می‌کنید پیش از آن که اصلا حتی احراز صلاحیت شده باشند یا دوره آموزشی بگذرانند یا حداقل برای تأسیس یک نفر تکنسین ناظر بگماری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 جدا کردن جای تل... تلیسه از شیری بنابراین چنان چنان آتکسوزی محیبی قابل بینی بود آنها حتی کودها را ذهکشی نکرده بودند. با سهلنگاری جان ده ها رفتگاه و گوساله را به بازی گرفتند. من هیچ شکایتی ندارم زیرا خودم داوطلبانه اقدام به نجات جان گاف ها و گوساله ها کردم تنها ناراحتیم هم این است که امسال درس نام زدم تمام می شود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 تا پیرو درخواست شفاهی تقاضا کنم گزارش مرا به پیوست تخمیم شده یک بار مطالعه فرمایید شاید گذشته چراغ راه آینده باشد با تقدیم احترامات فااض سوزنچی دوباره دیگر نامه را میخوانم و بعد آن را لوله کرده در باک بنزین فرو می با خودم میگویم اصلا به رئیس اداره چه مربوط خوشید خانم با من عروسی می کند یا نمی مرا میخواهد یا نمیخواهد اگر من تا امروز به هر آتشی سوختم به خودم مربوط است حالا هم اگر زنده ماندم و به جلال آباد رسیدم تابستان با قطار به تبریز میروم در پیادهرو روبروی در دانشکدهشان منتظر منتظر میمانم اگر آمد و مرا شناخت یا لبخندی زد جلو می میروم و با او ازدواج می کنم وگرنه حق را به او می دهم بلا فاصله در دست میگیرم برمیگردم و به سراغ روزگارم می روم. مدتی کاغذ بنزینی را روی هوا نگه می‌دارم هم از گورکا می می‌ترسم و هم دل آتش زدن جُزوه ها و کتاب ها را ندارم از اینها گذشته اصلا نه کبریت دارم نه چندک پس کاغذ بنزینی را لای برف پنهان می‌کنم دوباره جُزوه ها و کتاب ها را در کیفم میگذارم و راه می‌افتند گاز گاز می‌دهم هوا میل به تاریکی دارد و روز رو به غروب است یا خدا یا خدا انگار خواب می‌بینم از دور چراغ روشن و خاموش می شود خداوند کمکم کرد جایی که چراغی روشن باشد آنجا آبادی است. جان تازه ای و با اشتیاق به سمت چراغها ها می رام. هر که پیش میروم به نشانه های زندگی نزدیک تر میشونم کم, کم و بام خانه ها گنبد و گل دسته های مسجد جلال جلالابات را می بینم حالا دیگر خودم میدانم که باید بپیچم دست چپ از صف درختان سنوبر که بگذرم حاشیه شرقی طبیله ها. بلاخره میرسم، ترمز میکنم، پیاده میشوم، جک موتور روی برف تعادل ندارد، یک بار میفتد و روی برفها میغلطد. من هم مشغول باز کردن حفاظ بارهایم میشوم، از شادی در پوستم نمیگنجم که ناز و باز هم زوزهی میشنوم همه امیدم به زندگی رنگ میبازد چه راه عجیبی یک نفس میمیرم، یک نفس زنده میشوم. اکنون در یک جهان سفید منجمد بلا تکلیف ایست دم بدم دم ها نزید تر از آن طرف هم سر و صدای ها و گوساله‌های های وحشت زده بلند می شود به سمت زوزه گوش تیز می کنم. زوزه زوزه تهدید نیست احتمالا زوزه درد و رنج است دنبال مسکن می گردم هیچ نوع مسکنی در کیسه ندارم تازه مگر گرد دهانش را برای مایه من باز میکند. تصمیم میگیرم کیسه را بردارم و دوان دوان خودم را به طویله برسانم اما کار خطرناکی است همچنان مردد میمانم مینا... می سر و صدا ها همه جا ساکت است چنانکه که صدای نشستن دانه های برف را ها میشنومم بعد هم صدای پای حس میکنم صدای پای گرگ است لنگ میزند نمیدانم چه کار کنم وحشت زدم. بی اختیار کنار موتورسیکلت دوی برف ها حالا حتی حالا از جرأت نفس کشیدن ندارم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 بعد لاشم را با دندان می کشد و با خود میبرند. کم کم دیگر هم میرسند و به اتفاق مشغول خوردن من میشوند. باید این فکرها را خودم دور کنم. آنها شامه قوی دارند. ترس شان را به خوبی استشمام میکنند. اما مگر انسان میتواند به موضوعی که نمیخواهد یا نباید فکر کند؟ سعی می کنم در این آخرین لحظات به خدا و خورشید فکر کنند.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 کاش میرفتم توی آغول خودم را گرم می کردم و برمیگشتم اما این کار برای گاوها و ها خطر دارد بنابراین همه محتویات کیسه را روی برفها میریزم اول با پنبه و محلول ضد دوفونی دور زخم گرگ را تمیز میکنم باد سمجی میخورد و بخار دهان گرگ را روی صورتم میپاشد ترس من کم شده اما همچنان میلردم باید کار را زودتر تمام کنم پماد آنتیبیوتیک یخ زده و به سختی خارج میشود به هر شکل پای گورکا بان پیچی میکنه کار من تمام شده دلم میخواد به او هم بگویم بیشتر از این کاری از دستم بر نمیآید لطفا برو اما او نمی رود کنارم ایستاده و زل زده به رو, به رو باید هر طور شده گرگا از تبلۀ کافها دور کنم. راه به نظرم میرسد لابلای جزوه و کتابهایم کتاب جیبی سبک وزنی دارم میدارم صفحاتش کاهی است لایم لایت چارلی چاپلین را پیدا میکنم و با تمام توان پرت می کنم به طرف صف درختان سنوبر نقشم میگیرد و گرد با پای زخمی به سرعت به سمت کتاب جیبی می دود. من هم کیسه را بر دارم و به طرف طویله می دارم. همین که می رسم پاچه کلون در طویله را بر دارم که داخل شوم اما قافل گیر می شدم. همین که در باز می شود گرد را زوزه کشان پشت سرم می بینم. در چشم هم زدنی قوغا می شود. های ترسیده فریاد کشان به سمت دشت نمیبرند تا فرار کنند من فریاد میکنم گاوها گوساله‌ها نترسید نترسید این گر خودش زخمی است به شما صدمهای نمیرسند، اما صدایم به جایی نمیرسد ها و گوساله‌ها رم کردند و سراسیمه میگریزند من هم تعادلم به هم میخورد زیر دست و پای و گوساله ها و گوسالهها میافتمد آنها هراسان از روی من میگذرند و عاقبت من میمیرم کمی بعد همه جا ساکت می شود ولی همچنان درد می میبارد و روی مرا آرام آرام میپوشاند